بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته باب لا يصلح الكذب حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین و علی وصحب اجمعین اما بعد نهومین باب از اباب صحیح <تصفح> اد مفرد باب لا یصلح الكذب دروغ کار خوبی نیست تا جایی که میتونی از دروغ پرهیز کن میخای اصلاح بکنی بین مردم بین زوجین سوریه استفاده کن درست علما اجازه دادن گفتن در باب ضرورت درسته ولی که پرانتزی برای خودت بزار و تا که میتونی دروغ نده از استفاده کن دی بیس و دو هشتومین حدیث از حدیث سهید مفرد از عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن علیکم بس صدق علیکم یعنی الزموا واضب و داوم و علی دا صدق یعنی مداومت داشته باشید بر روی صدق راسگوی فإن الصدق يهدي یهدی البر بدونید که راسگوی شما را هدایت میکنه بسی خوبی بسی بس صعاد بسوی عبادات بسوی خیرخواهی درهای خیر رو براتون باز میکنه فکر نکنید در اون معامله در اون تجارت اگر راستگو بودید ضرر میکنید خیر معامله که طرفین درش راستگو هستن خیر و برکت در اون معامله و اون تجارت میوفته راستگویی خیریت میاره خوبیت میاره فان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى و بدون شک خوبی هم جاش کجاست بهشته جای خوبان کجاست؟ بهشته عمل صالح عمل خوب جاش بهشته راسگوی خوبی میاره و خوبیش هم جاش بهشته پس مدامت داشته باشید بر راسگوی و این رجل یسدقو حتی یکتبه عند الله صدیقه یک فردی همچنان راسگوز صادقه تا جایی که الله جل و علا نوشته بشه که این شخص از جمله صدیقینه تو میشه از جمله صدیقین که در بالاترین جای بهشت قرار داره نزده الله میشه صدیق یعنی این صفت نیک را الله به تو میدهد شما نگاه کنید بحث اوصاف میشه اینجا یک سری اوصافی دارید در شریعت که ممدوحه ستایش شده تشویق شدیم روش عفو بخشش کرم رحمت و اینجا صدق درسته؟ احادیث را شما بر بگردید؟ رحمت داشتید نسبت به انسان نسبت به حیوان رحمت داشته باشید تا الله شما رو رحم کنه من لا یرحم لا یرحم درسه رحمت السرف عاف عفو کنید عفو بشید ببخشید بخشش بشید اینجا صادق باشید تا پیش الله صدیق بشید الله خودش ارحم الرحیمینه الله خودش در وعده هاش صادقه الله خودش به الله خودش غفوره الله صفات نیک داره صفات نیکش هم دوست داره و اون کسانی که این صفات نیک رو دارن هم دوست داره الله عفوه عفرا هم دوست داره الله صدق رو دوست داره و کسانی که صدیق رو دوست داره و خودش هم در حرفش صادقه در اون قرآنی که وحی کرده هایی که داده وحی که بر پیامبر نازل کرده نقیضش ضدش ابلیس بخشش رو دوست نداره کبر رو دوست داره غرور رو دوست داره اجر رو دوست داره دروغ رو دوست داره برای چی قصد افساد الله قصش سلاحه الله قصش خوبیه خیرخواهی ابلیس قصش شرخواهی بدخواهی و اون چیزی که شیطان دوست داره الله بغزش داره و اياكم والكذب بس بر حذر باشید از دروغ الله بغضش داره الله راستگویی را دوست داره ولی دروغ را دوست نداره بر حذر باشید این فعل محبوب نزد ابلیس شیطانه و اياكم والكذب بر باشید از دروغ فان الكذبه يهدي الى الفجور دروغ شما را هدایت میکنه به سمت سوی فسق و فجور و گناه و معصیت سنان چه داشتیم. فجور، گناه، بدعت، شرک، کفر، ولفجور و یهدی الان نار، انواع فسق و فجور و بدعت و گناه و معصیت. تو را به سوی جهنم میکشنن میبرن، وارد جهنم میکنن، برحذر باش. دروغ تو را رهنمود میسازه به سوی فجور و فسق. و فسق و فجورم ترا وارد جهنم میکنند و این رجل علیک دیو حتی یکتبه عند الله کذبا شخص دروغ میگه تا جای که نس الله نوشته بشه که او بست کافیست این حدیث را شما تطبیق بدید با سوری ویل للمطففین الَّذین اذا اکتالو على الناس یستوفون و اذا کالوهم او ازنوهم یخسرون بعد صفحه که شروع میشه كلا ان كتاب الفجاري لفي سجين وما ادراك ما سجين بعد از اني آيات در شأن فجار وان الكذبه يهدي الى الفجور فجار كلا ان كتاب الفجر لفي سجيم فرونديه جهنميان سجين بعد از اون مياد كلا ان كتاب الابرار لفي علين وما ادراك ما عليون فرونديه عليون بزرگواران بهشتيانه این سوره خلاصه ای است از تو جزء کدوم دسته هستی؟ ابراری کلنه کتاب البرار یا جزء فجاری کلنه کتاب الفجار سوره هم از چی شروع میشه از از تعامل ویلون اون اونهایی که در حق و حقه هم دیگر در معاملات پایمال میکنن، این کمتر میکنه اون بیشتر میکنه حق مردم رو میخوره، فسق فجور. این فسق فجور آخر تو را به شرک و کف میکشونه. تو را به جهنم میکشنه و میبره باید ازش باشیم. قال المؤلف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا أن يعد أحدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له ديوسون ودنهمين أسرى صاحب المفرد من بخاري رحمه الله وغفر له حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كميات لا يصلح الكذب في جد ولا هذا اسعد ابن مسعود رضي الله عنه كمي يقول لا يصلح الكذب في جد ولا هذا لا يصلح دروسني اسكتو دروغ بيجيه تش به جدي و تش بشوخيش ولا قلت يمكن استثناء رخصتي اونجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما دا دادن درسجا اصبر اني كدرو حرام هم شوخي وهم جديش حرام ولا أن يعد احدكم ولده شيئا ثم لا ينجز له يعني حتى اگر يك از شما ببچش قولي بده و بعد عملیش نکنه. این هم دروغه. چیزی بهت میدم، اگر اون کار انجام دادی و بعد بهش ندی، دروغه. فلان کار برایت انجام میدم، بعد انجام ندی، دروغه. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی بررسلاص الله سلام گفتن. اینکه تداعی بونا با ما شوخی میکنی. شوخی، نه جگویا شوخی. مثل دو تا مثالی که زدیم در درسی گذاشته، بعضی اون پیرزن که پیرزن وارد بهش نمیشه، و بحث اون صحابی که رسول الله که من یشتری منی، من هدیه العبد. منزور از عبد بنده الله بود نبرده برده رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود انی لا اقول الا حق من جز حق چیزی دیگه نمیگم کلام من حق یعنی اونجا که گفت وارد بهش پیرزن نمیشه یعنی جوان وارد میشه اومد پیرزن گفت ببین یعنی پیر... انسانی که وارد بهش میشه جوانه پیرزن وارد بهش نمیشه و اونجایی که گفت من نشتر این این هذا العبد منظورش عبد لله بود نه عبد برده, برده کسی بنده الله بود کی این بنده الله را صل و رحمگی که صلی الله علیه وسلم من سخنم حق جوز حق چیز دیگه نمیگم یعنی دروغ از من صادر نمیشه و ما را هم هشدار داده رسول الله صلی الله علیه و از اینکه دروغ بگیم حتی اگر به شوخی باشه مردم را بخندانی ویل للذی یحدث فیکذب یوشک به القوم ویل للذی یحدث وایبر انت که دروغ بگی که حرف بزنه دروغ بگه که مردم بخندند حرف بزنه دروغ بگه که مردم بخندند ویل الله ویل الله وایبر وایبر به بشه، سحق عذاب الهی، عقوبت الهی بشه اون شخصی که دروغ میگه برای اینکه مردم بخندن. این تهدید و وعید سختیه بر اونایی که خصوصا جوک میگن که جوکاشون هم قالب تحقیر داره، هم تمسخر داره. لا یسخرقوم من ننقم. رودونی مینابی لور، ترک و و الى آخر مسخره است، ریشخنده. لا از و ننقم. این تنها جوک نیست، بلکه دروغایی هست که ساختن و بافتن به قصد تمسخور کردن و ریشخند کردن بر قومی ملیتی، قومیتی، نژادی، عرقی این از کارهای ناشایست حرامه ویل الله ویل الله وای بر وای بر وای بر اون کسی که جوک میگه که مردم بخندن، جوک دروغی میگه که دروغ بودنش یک جور تحقیر و استهزایی که در هست از طرف دیگر که حرامه. روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم مادری رو میبینه حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه. ما دار مر السداسة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا شه سيدود. ما دار أقول. ها تعال واعطيه. بيا. بدأت. رسول الله صلى الله ب ما عبد الله بن عامر رضي الله عنه. ميكي وما أردت أن تعطيه. نبي خا سيبيش بدي. قالت. أعطيه تمرة إنها بيشمدهم قرمه يعني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. أما إنك بوابيرونت ميبرا. ونا بورديش. دروغ گفتی بهش هر عد ای که بدی به بچه بابا اینجا نیا دکتر میاد گریه نکن الان دکتر میاد سوزنت میزنه دروغ اما این نکیله اولم دراق هشه اگر نمی همون قلمان بهش نمیدادی که بهش وعده دادی برات ای زن دروغی نوشته می شدد. پس برحذر باشیم از اینکه دروغ بگیم به شوخی دروغ بگیم از باب مسلحت به قول خودمون که بچه ساکت بکنیم ب بهت بستی می خریم و بعد نخریم اینا مثاله. برحضر باشی که این دروغ ها بزرگ میشن همون دروغ تو سبب میشه که بچهت روزی دوز بشه فه این الکذیب یهدیهیل الفجور همینطوری شخص دوز نمیشه این گناه ها معصیت ها هست کم کم روی هم, هم باشه میشه ما کوتاهی میکنیم آسوم میگیریم و بعد میشه اون شخص دوز قال المؤلف رحمه الله باب الذي يصبر على أذن الناس حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن يحيى بن وثاب عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم سدوس الشميم باب زباب الصهاد مفرد من بخاري باب الذي يصبر على أذن الناس کسی که سب میکنه برعزیت مردم 300مین حدیث حدیث عبدالله بن عمر رضی الله ما که الله صلی الله علیه و سلم فرمودند المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذائهم مؤمنی که مخالته میکنه یعنی میاد وسط مردم با اونها نشسته و برخاست میکنه و سب میکنه برعزیت و آزارشون بهتره اون فرد بهتره اون کسی که نشسته و برخاست داره با مردم بهتره از اون کسی که من الذي لا يخالط الناس ولا يسبر على اذائهم نه با مردم مخالطه میکنه شخص رو برخواست میکنه و نه هم سب میکنه بر ازیتشون این شخص برتره بهتره شخصاً با مردم صبر بر ازیتشون این بهتره از اینکه تو گوشه گیری رو انتخاب بکنی عزلت رو انتخاب بکنی که بعض از علماء استثناء قرار دادن اگر شخص عزلت براش بهتر بوده به خاطر اینکه به تعلیفش به تحقیقش بیشتر برسه. مثل علمای همچون ابن الجوزی و غزالی و کسان دیگر که مجغول شدن به خدمت دین وقت نداشتن که دیگر بچسبدن به نشست و خاص مردم یک سری استثنات تو پرانتز بعضی از ما قرار دادن ولی کن بر اینه که انسان نشست و خاص و مردم داشته باشه و بانها با رفت آمد داشته باشه ولی نه اون رفت آمدی که شریک جور بشه و در غیبتشون در اون لحوه لعبشون بازیه ورق و اون بازی هایی که حرامه مثل شطرنج اینا بازی هایی از حرامه ورق حرامه اینا ادواتی یعنی هن که برای قمار استفاده میشن و ما نص داریم از حدیث چنانچه ابن قیم در کتاب فروسی میاره و شیخ مشهورم هم میکنه که رسول الله صلی الله علیه وسلم از بازی شطرنج و نردشیر من کردن و فرمودن که دستت رو در گوشت و خون خوک فرو بهتر از این که آلوده بشی به شطرنج و بازی نردشیر بازی نرده. مجلسی هست که این لحو لعبها توش هست تو نباید اینجا دین خودت را زیر سوال ببری با نشستان با اونها حرامه جای تو اونجا نیست مجلسی که منکر توشه رفتن به عروسی که توش موسیقی هست حرام رفتن به عروسی که توش مولودی به حرام حرامه رفتن به عزاداری که توش ولیمه هست حرامه تایید منکره هر جا تعیید منکره تو ایجاد سوادی لشکر بکنی اونجا. جمع اونها رو پررنگ بکنی رفتنت به اونجا حرامه نشستنت با اون قوم حرامه اینجا عزلت برای تو بهتره. اما اونجایی که اللف ایجاد محبت دعوت و اصلاح بین مردمه و خیرخواهی تو بهش معموری تو شرع از تو خواسته که بری از وقتت بگذاری و به مردم بدی تا اینکه اصلاح ایجاد بشه وگرنه اصلاح ایجاد نمیشه به خاطر همین توصیه شر شصت و برخاص به مردمه هم از اینکه فرصتی باشه برای اصلاح هم از اینکه تو درد اونها رو بفهمی. خیلی جا هست که ما از درد مردم غافلیم چون با آنها شخص و برخوااست نداریم مادره همینه از حکمت های که انسان شصت و برخاص با مردم داشته باشه تا اینکه اونها رو درک بکنه و اونها هم او رو درک بکنن و در مقابل آزار اذیت که میشه صبر و تحمل انتخاب بکنه. قال المؤلف رحمه الله باب الصبر على الأذى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني الأعمش عن سعید بن جبیر عن ابی عبد الرحمن السلمی عن ابی موسی الاشعری رضی اللہ عنه عن النبی صلی اللہ علیه و سلم قال ليس احد او ليس شيء اصبر على اذن يسمعه من الله عز وجل و انهم لیدعون له ولدن و لا لیعافیهم و یرزقهم باب <تصفيق> از باب صحیح در مفرد باب الصبر على الالا یک از نمونه های سبر ازیاد سبر الله جل وعلا بر اون مخلوقاتی که بهش ناربا میبندن و ادعا میکنن که عیسی فرزنده الله یا عزیر فرزنده الله سی سد حدیث از حد سحیه مفرد از ابو موسیع اشعری رضی الله عنه که بگید رسول الله صلی علیه و سلم فرمودن لیس احد و در روایت لیس شیئون اصبر على اذا یسمعو من الله عز و جل کسی نیست که همچون الله جل وعلا بر و ازیاتی که میشنوه سب بکنه کسی نیست که مثل الله بر آزار و اذیت سب بکنه انهم لیدعون له ولدا اونها ادعا میکنه که فرزندی داره و انه لیعافیهم و یرزقهم ولی وقتی وجود الله اونها را مؤاخذه نمی کنه به خاطر اون گناهشون معافاتشون میکنه لیعافیهم و قباحتشون نمی کنه با مریضی و درد و عقوبت و رنجش مهلتشون میده مثل برادران یوسف با ظلمشون الله ولاتهشون تا روزی فرا برسه ظلم اس بر اینه که همونجا بد عذاب می‌شدن ولی که نه الله حلیمه. الله بردباره صبر میکنه بر بندگانش و بالاترینش اینکه که بر خودش صبر می‌کنه یعنی عذیت میشه در اون ناروایی که بهش میبندن ولی با این وجود به اون شخص مهلت میده و یرزقه روزی هم بهشون میده روزی رو ازش قد ما اینجا یک مسئله بهش اشاره می‌کنم میگن که اینجا ما باید از این حدیث که انتقام را ترک کنیم ترک کردن انتقام اولاتر از انتقام گرفتن ليس شدید و سرع ولیکن نشدید شدید و توانمند و قدرتمند توانمند کسی نیست که کمر کسی را زمین بزنه بلکه اون توانمند کسی که خودش را در خش نگه داره میتونی طرف له لح بکنی ولیکن خود را نگه داری این صفت ممدوحه محموده ستایش شده است از الله جل وعد الله دوست داره والقاظمین غیر والافین عن الناس خشم تو فرو ببری الله اینو دوست داره در تو. میتونی انتقام بگیری میتونی بزنی میتونی خوردش کنی خیلی که دست نگه میداری چرا چون دوست داری که الله جلب واع تو رو دوست داشته باشد تو رو عفو بک چون الله جل و علا انتقام برای خودش نگرفته تو هم نمیخوای انتقام بگیری الله دوست داره این صفات و این خصال نیک را دوست داره حلیه و دوست داره تو هم حلم داشته باشین. رحيمه رحمانه جسد رحمتهم رحيم باشي قال المؤلف رحمه الله حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيقا يقول قال عبد الله رضي الله عنه قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة كبعض ما كان يقسم فقال رجل من الأنصار والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله عز وجل قلت أنا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فساررته فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه وغضب حتى وجدت أني لم أكن أخبرته ثم قال قد أوذي موسى عليه السلام بأكثر من ذلك فصبر <تصفيق> حذیس از حذیس صحیحه دارم مفرد از مبخری رحمه الله حذیس عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه کیم بیاد قسم النبي صل الله عليه وسلم قسمه تاجنگ حنین رسول الله عنه غنیمت را تقسیم کرده ک بعضی ما کانه یقش تقسیمی که الله بهش اجازه داده بود که در اون اجتهاد بکنه بکی بده بکی نده چقدر بده چقدر نده فقال رجل من الانصار ای کز انصار نرحت مش والله إنها لا قسمه ما أريد بها وجه الله عز وجل إن تقسيم الرسول صلى الله عليه وسلم تقسيم ليس كرضا الالهي درش باشه سخت سنگين اعتراض بر الرسول صلى الله عليه وسلم سنگينه عزيز دو تا صنف يك منافقين داشتيم منافقين و اون کساني كه خوارج صفت بودن هرق بسره ميگه عدل يا محمد قال من يعدل انما عدل منافقا خارجی صفاته که رسول الله خبرم میده که از نسل اینا کسانی بیرون که یقتلون اهل الاسلام و ادعای اهل الاوثان مسلمون را میکشن و کفار را رها میکنن اوصافش قسم دیگر صحابه بودن مؤمن بودن ولی که اینجا به طبعش خوش نیومد که مشرکین اینه که اینقدر مبارزه کردن با رسول الله اینجا از غنیمت خوردار بشن و خودشون محروم چرا حکمتش رو نمیدونن به خاطر همین این سخنان بر سر زبان بعضی ها اومد حالا شاید عذری داشتن یا نداشتن دنیاست انسان جایی شاید فریب به دنیا بخوره صحابه انمای دعای عصمت نداریم رسول الله صلی اللہ وقتی که میشنوه این چینین اصحاب گلایه دارن نراحت شدن نه اینکه انتقام نمیگیره میره پیششون از ما به دلداری، مواسات همدلی میگه بهشون رازی نمیشید اگر اینا, اینا رو بگیرن ببرن. ولی شما منو با خودتون ببرید بر بهگردون مدینه اینا به این مال دنیا رو ببرن با خودشون ولی من با شما بیام اونجا هم عشق میزن غری میگرن رسول الله صلی الله علیه و سنت هیچ چی میخوان از دنیا فورا راضی شدن فورا تسلیم شدن از حرفشون پشیمون شدن با یک یادآوری با یک تذکر و... این فرق بین صحابیه با اون منافق با اون منافق تو انا عبد الله بن مسعود میگه لا لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم من مرم إن حفر برسول الله سلم ابلغ ميكونم ميقم فأتيته امدم نظر رسول الله سلم وإن حرفي كشيني دي بودام وهو في أصحابه وإن شاسر بودام رسول الله سلم ميون أصحاب يرانش رضي الله عنه مجمعين بيقى نشاسم انجا فساررته وبرسول الله صلى الله عليه وسلم گفتم درميان گزاشتم فساررته بصده يباين كه كسينش نبدن انجا برسول الله صلى الله عليه وسلم وس فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم فشق عليه ذلك السخنان خيري سنقين بود بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه شهري رسوله سساها باز مشل مش مشل وغاضب خشبين هم مشل نورحاتي وخشب نقيني هم مياد حمرو وخش حتى وددت أني لم أكن أخبرته جایی که با خودم گفتم ای کاش که نمیگفتم خبرش نمیوردن ثم قال رسول الله صلی الله علیه و اونجا فرمودند قد اذی موسى با اكثر من ذلك قد اذی موسى موسی, موسی, موسی علیه السلام بیشتر از این از قومش اذیت شد پس صبر صبر یعنی مناصب میکنه رسول الله صلی الله علیه و آله صبر میکنه بعد گفتم از کمال صبرش بونجه که ناراحت شده خشمگین هم شده خشمشو فرو میبره والکاظمین الغیب خشمشو فرو بره. بعد میره با اونها هم میشینه اذیت شده الی یعیش مع الناس و, و یصبر علی اذام موسی خانان را شنیده بعد میره با اونها هم میشینه اونها رو نصیحت هم میکنه میگه اونها ما رو دنیا ببرن شماهای منو ببرید کدوم یک بهتره کدوم یکی رو میخای منو ببرید یا مال دنیا رو ببرید کدوم یک بهتره راضی شدن اشتباهی از اونها سر زد ها باید با بخشش جبران بشه نه با انتقام اینو باید ما یاد بگیریم و این نوع موقف ما هست در مقابل اون خبری که به ما شاید خبرچین برسونه از باب خیر یا از باب شر اصل اینه که خبرچین خبر میاره از باب شر فساد اینجا عبدالمسعود <سؤال> اون خبر را آورد نز و جه فساد اسباب اصلاح آورد اومده بود به قصد اصلاح دلسوز یاران رسول الله صلی الله علیه و که همچون منافقین دارن اون سخنانشون تکرار میکنن این سخنان نالایق بود نسبت به رسول الله صلی الله علیه و اسلام اومده بود از باب نصح نصیحت فرق تو در عملت قصد نصیحت باشه یا فضیحت باشه نصیحت نصح سره که اینجا عبد مسعود میگه فسره رو توه از در پنهان یعنی در گوشی بهش گفتم کسی نشنبه این نصیحته اسباب نصح بگی نصح چه به اون چیزی که به شهن خودش برمیگرده چه اون چیزی که به اون کسانی که داره الان مسئله که رخ داده داره بهش بازگو میکنه اسباب نصح داره میگه، نیمت شیپور به دست بگیره بلنگو به دست بگیره تریپون به دست بگیره سر منبر بیاد فاش بکنه این فض رسواییه ابن دراج کتابی داره در بحث فرق بین نصیحت و تعییر و فضیحت و اینا کتاب مهمیه تنبیه کردن بچه در جمع فضیحت رسواییه این تعذیب نیست ادب بین خودت و بچه‌ست بچت است خوردش نکون تو جمع حتی معلمم جلو جمع خیت کردن دانش آموز جلو بقیه تو سری زدن بهش تحقیر کردن بهش اینا تعذیب نیست تعذیب سر نصیحت سره خاطر هم رسول الله صلی اللہ علیه وسلم بفرماید اذا ارادت نصیحة لیدی سلطان فلا تبده علانیه اگر نصیحة برای سلطان حاکمی داشتی علانیش نکه چرا علماء مثل فوزان انکار میکنن بر امصال عریفی تریفی عوده و ناصر علوان و خالد الراشد؟ چرا اینا محل انتقاد در فضای مجازی رد و ردود بر علیه شونه اینا سروریان اینا اخوانیان اینا فلانن چرا اللہ چیه این رد و ردودها چیه؟ و خاطر اینا نصیحتشون به حکام علنی آشکاره دلیلشون چیه میگه که رسول الله صلی الله علیه و سوال شد بهترین جهاد چیه فرمودن رسول الله صلی الله علیه و آله کلمت حق را سلطان جائر انسان کلمه حق رو بگه تا گجلو حاکم باشه رسول الله صلی الله علیه و وقتی که این پاسخ رو دادن دقیق پاسخ داده گفتن بزرگترین عمل چیه جهاد چیه گفت که کلمه تو حق کلمه حق اول بود حق بشه حرفت صحبت بعد مقیدش کرد گفت که عند فرانتس عند سلطان جائر سلطان ظالمه ولی ایکن اون انکارت جلوش باید باشه جلوش بود باشه نه پشت سرش پشت سرش میشه غیبت تخریب پشت سرش میشه فضیحت رسواهی بدگویی ناسزاگویی حرفی داری بیا جلوش این شریعت ها نفس مؤمن میپذیره تسلیم در مقابل نس شریعت ولی نفس خارجی صفت نمیتونه بپذیره میگه نه با عقل من جور در نمیاد حاکم ظلم بکنه بعد ما ساکت بشیم امروزون هزار تومنه فردا هزار تومنه بعد ساکت بشیم من تماشا بکنیم بشیم دست رو دست بذاریم که به ما ظلم کنن حدیث میاری بهشون که رسول الله صلی الله علیه و سلام فرمودن که سب بکنی بر جور و ظلم حاکم و ام ضرب ظهرک واخذ کو تا کد بزنه با شلا با تازیانه مال تازیت بگیره تو سب بکنی نباید خروج بکنه برای اون حاکم باید سمع و داشته باشی یا میخوان حدیث رو تعویل بکنن مثلا بنده خدا که اومد گفت که نه این مقصد اینه که اگر یک شخص ظلم شد سب بکنه ولی اینکه اگر جامعه مورد ظلم واقع شدن نباید سب بکنن شیخ فزان گفت هذا صاحب هوا يريد ان يفسر كلام رسول الله به هوا كما مقاله حفظه الله این صاحب هواس این صفات اهل بدعت رو داره این کسی که حدیث رسول الله رضي داره با هوای نفسش تفسیر میکنه رسول اصلا نگفت فرد نگفت جمع نگفت جامعه مشخص نکن گفت که کتک خوردی حالا چه یه نفر باشی چه صد نفر باشن مال تو گرفت ازت به زور تو وظیفته که سمع و طاعت داشته باشی و دست از اون بیعتی که داری نکشی اون بیعت رو نشکنی خب اینه که وظیفه شرعيه علما میان نصیحتشون میکنن خب میگن که پس چرا شما این نصیحتتون علنیه شما میگید حاکم رو نصیحت علنی نکنید نکنید کنید فرق بین نصیحت و امر معروف نایزمون منکر. که شما منکری را میبینید اون منکر اونجا باید انکار بکنید چه از حاکمش چه از غیر حاکمش حاکمی منکری انجام میدی میشه میگین تو منکر انجام میدی دعوتگری منکری انجام میده بیاش میگه که این دعوتت این کارات منكره یک جاها شخص خودش سبب میشه که ها شکسته بشه اون دعوتگر اگر اون بدعتشو آشکار نمیساخت پنهانش میکرد ما علنی این کار براش میکردیم میگفتیم که آقای فلانی اینطور حرفی میزنه بدعتشو آشکار کرد مثل کسی که توف تو مسجد میندازه ما مجبور شدیم اون توفه رو پاک کنیم تو جمع همه رو میبینن فلانی اومد تو فنداخ مسجد رو آلوده کرد کدوم حریم مقدس سره مسجد یا دین و شریعت الهی شرعت الهی مقدف سره کسی اومد دین را بازی چه قرار داد اون حاکم با دنیای ما سرکار داره نه با دین ما حاکمه سیاست امور زندگی روزمرگی رو را به عهده داره اگر مانع از نماز ما شد اونجا بله مجاهده کن اطاعت نباید بکنیم ما اقام و فیک و مصلا. دین نه خط قرمزه لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق هر کسی میخواد باشه حاکم یا غیر حاکمه حریم خط قرمزه. این شخص اگر اومد در چارچوب دین دخالت کرد اظهار نظر کرد با هوا و حوصش با میل و رقبت های شیطانیش اونجا هست که وظیفه ما زب و زدودن و پاکسازی دین از هر رونه دخالتی بیگانه هست بر اون هر دخیلی اومد تعرض کرد به دین ما ما وظیفه داریم که از دین خودمون پاسبانی کنیم پاسداری کنیم بزدائیم ازش هر گونه آلودگی و بدی حالا میخواد هر کسی باشه سبحان الله آدم تعجب میکنم امروز صبح از خواب بیدار شدم دیدم یکی بهم پیام داده با تهدید و بعید که چرا تو کی هستی که بر کتاب فضای اعمال اعتراض وارد بکنی شما احانت کردید شما فلان کردید الى آخر نمیخوام آلا اون جمالات تو پرانتز بگم ما رسول الله رسول الله علیه وسلم داریم پیغمبر الهی، ناقل بحیه. علیه الصلاة والسلام از پدر و مادرمون ما با بیشرورو داشته باشین. باید ازش دفاع بکنی. به زداییم ازش. درسته؟ به نظر شما کدوم یک اولاتره؟ زدودن از رسول الله صلی الله علیه و هر چیزی که به دروغ بهش نسبت داده شده یا زدودن از فردی که دروغ گفته یا دروغ برای ما نخ کرده. یک کسی مرتکب این اشتباه شده حالا از جهل بوده، دانایی یا نادانی آیا وظیفه شرعی من این هست که بیام بگم این شخصی که این دروغ ها رو به رسول الله صلی الله علیه و نسبت داده آیا وظیفه من هست که از پیغمبر خودم بزدایم زدودن اون بدی اون دروغ ازش وظیفه نیست وظیفه است یک وظیفه شرعی تو وظیفته اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه و همینطور هم تو وظیفت پاسبانی دین بکنی پاسداری از دین بکنی ولی که هوا و هوس معیار رو عوض میکنه به جای اینکه شخص پاسدار دین باشه، شریعت باشه و ناقل اون شریعت میشه پاسبان شخص هوای نفس. چه چی چیز او را کور میکنه؟ تعصب. دیگه نمیبینه. دیگه کور میشه. دیگه دنبال انتقامه. دیگه تهدید میکنه. یکی گذاشته بود انواع تیشه تبر، چاقو گذاشته بود تو پیامش با این به بی‌سراغت میایید. انواع تیشه و تبر و شمشیر گذاشته بود. رسول الله صلی الله چی میگه؟ یقتلون اهل الاسلام و يدعون اهل الوتا. چی چه میشه میگه انسان خودش اجازه بده کسی را تهدید به قتل بکنه هوا تعصب تعصب شریعت داش. داشت یک این تعصبش به رسول الله علیه وسلم سلام بود که نیست ابن حجر میگه فی هذا الحديث جواز اخبار الایمام واهل الفضل بما يقال فيهم مما لا يليق بهم ليحذر القائل ولی امر عالم درس اون حرفی که پشت سرشون زده میشه ما بهشون ان انتقال بدیم تا از گوینده بر باشن از او شخص مفسد که داره تخریبشون میکنه میگه وفیه بیان ما یبرح من الغیبه والنمیمه در این حدیث بیانه این هست که جای غیبت کردن و نمامی کردن درسته لان صورتهم موجوده فی صنیع ابن مسعود هذا چون اینجا ابن مسعود این کارو انجام داد و رسول الله هم صل وسلم این کار نکرد برش این کارش تأیید یا تأیید نیست تأییده ولم لم ينكره النبي صلی الله عليه وسلم سلم کار برش نکرد وذلك لأن قصد ابن مسعود كان نصح النبي صلى الله عليه وسلم قصد ابن مسعود رضي الله عنه نصحود وإعلامه بمن يطعن فيه وما تقول إعلام الفلاني ترى بر عليها تهارف ميزنه ممن يضغر الإسلام ونمود ميكنا مسلمانه ويبطن النفاق ودار قلبش نفاق داره ليحذر من طيقاتش برحزار باشه وهذا جائز ان جائزك کما جوز التجسس على الكفار ليؤمن من كيدهم جواز شخص تجسس بکنه در مقابل کفار برای اینکه از کید و مکر اونها در امان باشه قد ارتكب الرجل المذكور بما قال اثما عظیما فلم یکن له حرمه این شخصی که اومد اینجا ابن مسعود حرمت شکنیش کرد اینجا اومد نظر رسول الله صلی و و غیبتش کرد این شخص بخاطر خاطر اون جرم و جنایت بزرگش حرمتی دیگه نداشت که بخواد ابن مسعود حرمت چکنی بکنه این شخص داره بر صاحب شریعت اعتراض میکنه این شخص داره بر پیغمبر دروغ میبنده حرمت داره به نظر شما حرمت داره حرمت نداره همونطور که ما در چند درس گذشته داشتیم بحث آقای حاشمی و بحث عمومی آیشه حدیثی اگر اومد از رسول الله صلی الله علیه و چه از قولش؟ چه از فعلش بعد یک شخصی بیاد تکذیب بکنه چه بخواد کمش بکنه چه بخواد اضافه بکنه برش ما وظیفمون پاسبانی و پاسداری از شریعته. اون شخصی که میاد اینچینین حتیکی میکنه وظیفه ما زدودن و پاسبانی از شریعته. وظیفه ما رد دادن بر اونه. وظیفه ما دفع کردن آب دهن اونهاست در مسجد و بر شریعت. ما وظیفمونه. هر چند که کشته بشیم هر چند که خونه ریخته نمیلیکت بشه. نه وظیفه و وفیه آن اهل الفضل قد يغضبهم ما يقال فيهم مما ليس فيهم عالم جاي شاید ناراحت بشه از اون حرفایی که پشت میزنن و مع ذلك فیتلقون ذلك بالصبر والحلم ذلك در مقابل اون موقفی نمی گیرن بلکه صبورن و بردبار همچنین از جمله در های این حدیث صبر و برباری موسی علیه السلام بر آزار و اذیت کا سبحانك و وبحمدك سبحان الله محمد و آل محمد